غيراني خوشویست، صلاة تندبية خوشحالين لبش دائمي خلد نوى كتبي چشتي مجوري هجار مكرياني حتي نولاتن فرمون لغل بن وک معلومه لاسرته اسلام و همیشه جلی کرد جردستی بگن بوده، هرگز روشک و لازم ازادی کرد و کردستان خوین جا اگر لچنگ آمیو آباسیانش دریان روا، شو تجرباری ترک و ولاتکی سخت و جلیژور لشرازه زاویه سری ببروبوم کرد و تمی ترک و ایرانو هرکامان و استوانه کرد با کوش بدنو نخوازله ل دورانی صفوی کنده لپاش اوی کرد که جنگاری خوی کرد و سربرمالو ل ایران دا پری سندوو موری دیزوری پیکواناو بنای شخ صفی اردوالی نصرعوز زمانی ترکی کرد و زمانی اهلی تراختگی خوی کورانی او ویستویانا بحری سیاسی لو طریقه تول گرن. به نتشیعی زوردالگرم تا بتوانن بچالاکی بربراکانی زور به سنی مذبکان بکنو، ایران بو خوین ساخ کنوا. سلطانانی اسمانیش خوین کردو تا پریزاری سنی مذبانو همیشه او دو هیزه به گرژیک داشونو کوردی تیدا مالویران بوا. امباسه زور قولو زوری لسر دو آون. نه یبه در چیلر د ابز بکری بلهم اونده ساله هیڅ کوردی ایران نه بوه کړه کی زوري د صلات درن شیعه مذهبو بگفت خو هر بچکه کوردی لهول چاو کړنو زمون ګرتنوه با اواته لچن اجم رسګاری به اجم وته ایراني د صلات دار چون ک کوردی هر قرب د ستو پولیس ترک زمان نه سرو جذره بو ازر یان لواندی و ناوی بو تر زما جیرانیان به کار ده بین منی من دله کوردی هر زمان پشکوتو هاتو مرزي منالن بغزی عجمم د گل شیر مشتوو بدل ناخوش میستون و تم لهو سره نیمدا ګیزم پیدا دداو او بشکایه دمو عجم شکا زور جر لبر خدا د پاره مو پادشاهی کوردی چکولو لجمع شواني گرگ دا دبوي دسته دستي اجامو كرد دبوي شرب كينو اجام بشكيانو كرد سركون بابم لا ترشي ملا دی سئدي بد يع الزماني دي بو زرب مبارکی كي دزاني كبيست بو يوا لالان سلطاني روم و كجرا و جگلان جنوی بستي اجام جنوي به ترشي اسمنيش و با کافری دش مردن دربارې کرد آزاد بونو له د سجمني کافر رزګربن لای هندک له نیوانو همو شوکرانی باسید کړد چن لاو کې حساب لاغي حسيان لا سکانې د کړدو زور جردهات نه لای ک منو زبیح همندال بونو له برخو ما نو په اندازې مندالی کیف من بکردهد زمان زمانی رضاخانی پهلوی بو کز نه دی ويره بیرش سین کاتو نو کوردي خوند اگر کس یک باسی پکړدا یا سرای جنیو د کوته برتیزو تشرو شرو دبو بغالتجر لبی مروژیک زبیهی لم پیدا بو اشاره تی به باخلي کرد ګوتم چیا ګوتی بابرن د زانی لشار درچین لنزیک پر دی سولګرا برډه کبو بنی بو خو منده بر چوان بی درینه انجومنی عدیبانی کرد که هی بناوی امین فیزی بگو لسالی 1331 وچی که دکات 1922 لستمبول چاب کرده پر بو لشعری شعران جاورو بتوان ساغه کوا هرچون اگ بو تقه تقه اگمان لیده کردو بشی خومن اویش با حال سک لی حال دکران چند روز او کار کرد روز اگ توشی شعرکی شغر زابوی نو خزمینه مدن پنجا لگل عشرتی گافا میرو ل نچی چاکا بگش کلی قافا دمان خندوا میرو لبخی چاکا بکشور کلی قافا من دم قلنگا دیگود آخریانی چی لنجا دم جود نازنم بلام دزنم نمان زانیوا وا فکر فکر خواهیب کینو لکی بپرسین وتم هرچند دزنم رنگا لی دانی کج بخون بلام لبابم دپرسم شوکابابم خریکی متعلق بو از یک مینگم کردو سرم خورند وتم بابا سری حالا نه پیوتم هاشیا بیادن بوم قرتم لینه هات دیزن پشت وتم بابا او دیزن ودیا و باله دلایشی دیزن پشیمان بوما او جار هستم چو ملای درگا حالاتن بدیب کم پیامود بابا اوش پیوتم ایساندن نه ام لدنهی دبله بزارم چد دو پیامود آخر لیم نادی پیوتم نه، بو چی لیتادم. وتم شعر یکی منو زبیحی نیزانین پی من بلی ایوش وتی زور باشه. کوانی انجو منبورم لباخل دارینا و شعر اکم وتی چون تن خوندو توا کبوم ود لقاقای پی کنینی وتی پی ورچندی با انقصتش حول بدا نزانی وی غلط بخونه توا بوی ساخر مو وتی جا اگر و کردی دخونه نوا من زورم حیم هستاین چوینه حسار مال گلیلا ده صندوقه فیشکی روسیه دا پوشیبو کپریبو دیوان شعر چاپ کرا او بخدنوسرو اتر خدا وت حسینی دیوانی نالی کوردی شیخ رضا سالم حریق و نزنم چندی تر یک یک ورماند گرتو غلطمانده پرسیوا صدیق حیدر یو سعید حماقاله ناویش کله امه به تمن تر بون دچونه روان دزو لهات نو ده چاپ لای حزنی مکر یانی و ده هناو ده اندای دهن نه تازور باش خومنده کوردی خن نو رهینو بل بر دم دمه لباسی آزادی کوردستان اوات خوازی رزگاری رزګاری و ورده ده نه زنم چونه چون بو ک چن کی تریش بونه او دنگی منو شریکی برکرد نه من بون لسابلاغ، حسینی زيرنگران کپاشان با فروهر د نصرہ عزیز ککغه ک افسر کی پولیس بو مین شوفی عبدالرحمن کیانی لاله دی کاک الرحمن حاجی بایزاغه ملا الرحمن حاجی ملای عزیز کند و رنگ هیتریش ک لبیرم نماون و ته حزب بوینګ به برنامه تنظیم کرمن هر اونده بو ک دغه یشتینه اکثر د خمان به اوته کمن خورده نجرین زبیحید گل خوې بردمه مالي پیاوک بناوی خال ملہ کموې جګل یم د کسي ترجله یبون وتيان یم د بينا حزب د بهاګمن لکتربو شون پخوم ک خیانت دکتر نکین ام کو بو نوا زور مایدل خوشيبو کړه دات مان پتو بو بو دو سه کړه باسم ل باري او هاو کار یل عزیز حسین چوبونا قاوه خانی حکایت خوان حکایتي اسکندر نامه ده ګوت هر دیګو توزل بیابان هسته بای رحمت توزی لاده د اعلان نشانه 100000 چکداري فلان پهلوان در د کوتو دي سانتوزو فلان پهلوانو هر وهه دريږي ده عزيز ک تو زه سرخوش بو بانجي کړد سګب ادي کو الاي و د ماچي دره نه خلک قهوخانه تاسم حكايت خوان سپي هالقراو لرزيو ملي لناکا تو زه هاتو رابوردو 100 الاي نشانه 1 مليون لشکري صلاح الدين ايوبي در کوت حسين عزيزي لچاخانه و در نو منيش شوینن کوتم دمان چکه هم من کمن منالو بیشکم نوک بیان گرن و تیه نفسره که دجبان سرو بنی قصی جنیو براگزودینی کردانو ناو نشانش فلانه عزیز خطیبو کشه کتم بیپکا شوی که زستانو بفرل عرضی بو چوی ندارو بری دجبان قدم من لیدا تا کابره هاته در عزیز به هوای سر خوشی یخی گرتو بربو لیدانی حسینو منش بنایوی ناو بجی کر چوی نیاری دیو بگره چوی دیشه. شلو کرد، دجبان هاتن نو بجیکر حالات نو عزیز جیره و خو غوتوبو په تلیفون خبر به فرماندهی لشکری صاحب لاغ دراو فرماندهی د عزیزین بوبرد که خوی ټولې لپ کټوه هم شوې پک و عرقیان خورده و قمارین کړدو سبه عزیز هاتو آزاد کړابو کړه کی صاحب لاغی بناوی حمیدی سلطانی که مأموري دولت بو بسی امنیه و هات ترغو داوی مازادګن میلی کردم و تم و نیو هیشتا دروینه نکراو بو خوم جوم قرز کردو و نانی جوده خوین قسمان تیک پاریو گوتی ملابازی در مهینه هرچند کس او روژن نیدویره با پیاوی دولاد بلای پشتی چاود برویا زورم رکستا کابران بسیت من لپولیسکان کروی دو کسم بان کردو خوم بربوین جانی چت خواردوه ترشو چواندر هرچی حواری کډت پولیس خویان کر کړ ولیحات لسرپشتي باغين د انبستو برو شار بونه و منځبرې کی سربر دا حوارم بو عزیز حسین برد ترسم هر دوک لحمید خفتاب هل مال درچوب وری ګرابون یو سوین دیان دا بو شکایت مل نه کا همو جنین تشقله به خلق کړن بو ترسه بونه من پرکیشن کم تر قصة قصة ديني او دماني کالا طرق دا جيان بدست امنيو معمولي دولته و جيان جهندمبو. جهندن بو راجنبو دستيك من لپيدانبنو تشقاليك من پینکنو برتيل من لنستيانن جلی کردی توتنو پرینا این اوقتو کم خزمتی خویانو اسپیان، پین بگوناهی گوره دج میرن هیچ نبا فیشه اند دا خستامالانو دینگو چکتا اما که همو فقیر بوينو برتيل من بو حل ندا سورا لا پروپو بوينوا لبرچای من اوندهان با قامچی لفقیدگ دا که وزکی داو دوای دو روش مرد گناهی هر اوابو ک زور زو جلوی اسپی امنیه نگرتوا سرباری بهانی توتن لما لابونو تومتی قاچخشیتی و برو بیانوی بیبسانوا ساله کوتن جیرمن کگنم با دولت بفروشینو نیما قبول نیا همو چرمن لو ک که ایمه مالک لشاری سابلا خوب شاری نوو للادی بردستی مامور نکوین. چن کسیگ لطرقو قرالی رکوتین چوینشارو لخانی کی کرن دامزرین وطاقه کمان بکری گرد روژانه لطرسی مأمور تایواره تا درکمان لسرخو داده خست شوانش تالای روژ قماری پرمنده کرد بلام چون قماریک شو تا بیانی کس لقرانی کدوان پتری ند دورندو ند بردوا جنی کابری خانچی من فیر کرده بو اگر مأموری ددی هرائده کرد کشکش کش, کش حالو حات درگمان گالا داداو هست من لخو من دبری تحالو نداما خانچه که دو جنی بون یکیان پیس و پیر اویترین لوسو جوانو مندال کر شوانه که قمار منده کرد حقی پیچرای قمار که دیه که براوا بو بجوانه که منی بلا بارو جوان دزانی و کفی بمنده هد آخری شو پاچراکی بدزیوه دخستوه گیرفانی من وات همیشه ندو را بوم حقی کرو ایسترو بارین شوانه حقی پیوان دو قرن بو، یعنی هر پیوک با دو کر دادن را شوی که زور سار دیکی که لئیمه لسه دراوی که دگل پیرشنکه ببو شرگان همون منین در سیپال سی پال دبن هنگل دا، بسر سهول دا، خرم خرم بکولانی شرد دا، برحال دا لجه خوی شو دگرانو سیکز بوین جوریک من پیدا کرد، بی اگر، بی درگا، پتو یکی لجه گای درگا پیدا کرد بو خانخش من کابره که بو. هەندێک ڕژیمان لە مقالێکدا گەشاندە و لە بەرچراای ملمان ممان لە قومارنا. خانەخوەکەمان خۆی کردە پایقمار، حەقی ئەو شە و شش حوقرڕانی خۆیمان لێبردەوە، بە زیژ نەکەوە قند و چاو، استکانو و چک مقالیو تەنەت مقالی قبلاندو ماشەکەمان قەبلاند و لێمان جن بە زی خاندی لا ئێمە گریا من داو و ڕۆیشتین و هاتینەوە گوون. ئەو فێرە قومار بوونا هەرچەند لا هیچ و بۆ گالتە لیم بو بنا کی گران للاده هر دگل اولاتو لوته ورده مالیکانه دم کرد و زور جران زورم ده دوران شویگ لبوکان توشی قمار بوم چلتمن یکم پی بو کلو مالی پی بکرم هموم دوران بو اوا حقی جیخون پی نما بو نیوشو چومه همم لحمام کبره ای که اشنام دید داوی قرزم لیکرد بهمو هزی خوی پینج قرانی دامی بدستی بتال و هنسی سرد حتموه تراغ کومار باز یې کوم لپاره بخو دستم لیبر نه ده شریک او رفیقه صالحه انم تننت مې نه کش میان لیبر دموا دواې بزین پیم ده هاتو نستاندم نه زنم چون بو کدلم دلم بجارک له کومار حلن ګوتو به وس وین خواردن ترک کړو لبیر خوونم بر دوا دوا چن که من جنید یانو من برا جوابم شول فبو میوانان ک یک جار زور بونو حسابي او هم ونه زور کمبو با به موتی بو شوا چاره نیون چون کین و تم اجازه بدن من دیکم توب شور ومال بر قمارم هناآو خالکم با قمار و سرگرم کرد تابع نیک هست لیفین ویستون نوستن خم کم دوارند بو بالان نظر جگر لواجره تازه هر یز دستم با بر قمار نبردو لوا بالای جوریا خم کرد هلوسرو بندک ون آقای چکرد که محمودا غی سگنیران پیدا کو با مأموریتی دولت حتی سرمانو ایش وکه همو مأموریتر لبرتیل دگر من هیچ من اویش سوربو که هر لیم بسته نه تنها کلایکم با دروز دکا لروی ناتشاریا ووتم آغا مرحومي بابت لخ نقل نجرا و فولمنیا بلام لباتی اوبرتیلا ختم کی قرآن بر روی بابت دخوانم زوری لخوش هاتو پیک هاتین بلامیستاش اوبرتیلا قرزم هرم چیروکم با قزلجیگ روا اویش بتجدنا و کردیت کرتش چیروکیپ لپیک نینگدادا ژیانی ترغم جګله مطالعه او ترسیم امور بخورای د گزاره پاییز ککاسپی دشتنمه ایوارن لسربنان دغل پیره پیوانو لوردرکان دغل کونه پیرژنانو شوانه با ګوروی بازی او ګګرتم لبندو با حکایتی قدیمو لا بفر بتبکنانو راواکر وښکمن را دبوارد حزب خالمله هیڅ نه نشانی لینن رابو سربخو پوچا بوو دوستانی آسیی تنفری هر که به روسان شیرازی دولت لا مکریان حالواشا، عزیز زندینه اوک که به عزیز آلمانی دناصر او پیوکی زور زن او دمپار او بو چند که بان کرد مالی خوی که منو زبی حیش دگل دا بوین. و تی حزبی ازادی خوای کرد دروز دکم. به لا مجوم قبول من کرد زور کسی تریش حتنه او حزب عزیزاندی با تبلیغات حزبگشتی کی کرد. شیغ محمد خانقه خلیفه ملاع علی زنبیدیو زور اغایتری کرد با دوستی خوی و بلینی هاوکاری لسند بون. حتی سقز هاتو گرره چوب و توریز زور ارمانی توریزیشی کرد با پیروی خوی. با تنتانو سنتانو یکو دگره چندین کیشکچی ارمانی لدوائیو درویشتن. پاشن راست یاندرو گوتین لهمند که دا پیاوی دولتی ایران بو، پول لی ساندونک نه اله یی بری ازادی خوځی پربستینه بنا شکرین عالم او بر لهمو شد زبیحیم دی تا وره برد می قاضی او تی به قران سوین بخو که او پیتی دلم لای کس نه اله و جاره دوهم سوین تی شو پی دلم چیه پاش نجیش شوانی چی درنګ منی وښون خویدا بکولانګ داروشتین لسری کولان یک کم دی راوستا دستی دې دبر پشتن دیبو دیر بوده من چی پی زبیحش ته کی چوی نه مالک تر زی له درګدان جوړه زور زوی یک یک کنن ناسی بردمه جوړک مزه پشت مالکی بسر سر کش شراوه قران یک به پالی به دیوار و دراو او لسر مزګه چقاو الله کی بدروش مروژول دیوار دراو خنجر کی روت به قرانخه و حل پسراوه پر کاغذ لسر او بخوینو همو جهر دست با قرآنه که دابده اگر لو سوینامه میلادی، دی خویند با خانجره در جه لسامو عیبتی او دیمانه دلرزیم زوری شنازیم بخونده کرد که شعوی امباورم سوینامکه حود بند بو. بداخوه بطاویل بیرم نماوه بلام تیده بو که با قرآنو کردستان و شرفم سوینام رووا بدل و بو آزادی کردستان تیده کشمو تا مردن قصور ایزبار جوانیه کوپیش برجوandi خدمت باولاتکم نخم برای حزبم بقط خم خوشهه تا مردن بزمان با قلم با اشاره و به جوری خیانت به حزب نکامو راستی لی نالامو نهینه اندامان لایکس ندار کنم در دوی سوانت خواهدن دستینای دستمو برد مرژوری که تر پتر لدکس لوی کردنشت بون. و تیان نوی که نهینی با خواد حال و جماری اندامیت بیستا. ای خودا چن خوشا. چون اما بوینا بیست کس. قد باور نکم خواه شکر زور به هزین. هجارم بنایوی نهینی حال بژیر. زور شوان لخوشیان خواملی ندکوت. و لرده لره ده هاتینه کوتای بشدیمی خوین نویک تیبی مجهوری چوری مکریانی. مکر یانی تر شبی